حسل 28 توم. خاتمه 29 سپتامبر دستوراتش را مو به مو عمل زیر سایبان سبز و تیره کافه نشستم و به امتداد خیابان فرانک را زل زدم خورشید نیمهجان و پاییزی پاریس یک طرف صورتم را گرم می کرد پیش گارسون با حالتی از توانمندی مخصوص فرانسویان بشقابیش که کراسان و لیوان بزرگ قهوه فرانسه روی میز گذاشته بود حدود 100 متر پایین دو موتورسوار پشت چراغ قرمز ایستادند و با هم شروع به حرف زدن کردند یکیشان کول پشتی آبی داشت که دو باگت بزرگ آن به این آنور ضربه میزد. هوا شرجی و بدون باد بود و بوی قهوه و شیرینی می داد. بوی تند سیگار هم می آمد. نامه ترینا را تا آخر خواندم. گفته بود که زنگ میزند، ولی هزینه ی تلفن راه دور برایش سنگین بود. درس حسابداری دو را با نمره عالی گذرانده و دوست پسر جدیدی پیدا کرده بود به اسم ساندیپ که داشت فکر می کرد در شرکت واردات صادرات پدرش که بیرون فرودگاه هیترو بود کار کند یا نه. استعداد موسیقیش حتی از ترینا هم کمتر بود. توماس به شدت از رفتن به مدرسه ذوق زده بود. بابا همچنان سخت سرگرم کارش بود و برایم پیغام فرستاده بود که دوستم دارد. ترینا کاملا مطمئن بود که مامی مرا به زودی می بخشد. گفت نامد به دستش رسیده و میدانم آن را خوانده است فقط باید به او زمان بدهی. جئ از قهوه را سرکشیدم. ذهنم به خیابان رنفرو کشیده شد. به خانهی که به نظر می رسید میلیون ها کیلومتر دور است. هفته پیش نامهی از خانوم ترینر داشتم. نوشته بود شاید درماندگی و استیصال باعث شد رفتارم دور از ادب باشد. اما لویزا دلم می‌خواهد بدانی همیشه سپاسگزار تلاش هایت هستم. وقتی یادم می‌آید که ویل کسی را داشت که با او یک دل باشد احساس آرامش می‌کنم. میدانم تو هم به اندازه من دلتنگش هستی. همینطور نشسته بودم و از نور خورشیدی که پایین بود چشمانم را جمع کرده بودم بزنی که با عینک آفتابی جلوی ویترین فروشگاهی ایستاده بود و موهایش را مرتب میکرد چشم دوختم. برای خودش در انعکاس شیشه عدا درآورد کمی خودش را مرتب کرد و بعد به راهش ادامه داد. لیوان را پایین گذاشتم. نفس امیقی کشیدم و سپس نامه بعدی را برداشتم. نامه ای که شش هفته می شد همه جا همراه هم بود. روی پاکت زیر اسمم با حروف بزرگ نوشته بود. فقط در کافه مارکی باز و شود. پاریس، خیابان فرانک همراه با کروسان و لیوان بزرگ قهوه وقتی برای بار اول آن را خاندم همینطور که اشک می ریختم خنده گرفته بود. خود ویل بود. تا آخرین دقایق هم رئیس معاب بود. گارسون به طرف من چرخید. مردی قد بلند و چابک با ده دوازده تک کاغذ که لای کمر پیشبندش گذاشته بود. نگاهمان به هم افتاد. ابروی بالا رفتهش می پرسید چیزی لازم ندارید. به انگلیسی گفتم نه ممنونم بعد با کمی کم روی به فرانسه تکرار کردم نامه تایپ شده بود با فونت مشابه با کارت که مدتها پیش برایم فرستاده بود به پشت صندلی تکیه دادم و شروع به خاندن کرد کلارک چند هفته از ان تاریخ گذشته است که تو این نامه را خواهی خاند به رغم مهارت‌های های جدیدی که در برنامه ریزی پیدا کرده این باز هم شک دارم به توانی زودتر از پانزده همه به پاریس سفر کن امیدوارم مزه یه را دوست داشته باشی و که تازه باشن هوا هنوز آنقدر آفتابی هست که به شبه در فضای باز و روی یکی از آن های فلزی. که همیشه بر کف پیاده رو لب میزنه از نشست کاف مارکی بد نیست اگر حوض کردی برای نهار برگردی استیکش خوب است اگر به سمت چپ نگاه کنی در امتداد خیابان لاریتسن پرفیومر را میبینی فروشگاهی که بعد از خواندن این نامه به آنجا خواهی رفت و عطر پاپیلانس اکستریم را امتحان میکنی اسمش را دقیق بخاطر نمیابر همیشه با خودم فکر میکردم رای هش روی پوست تو العاده است بسیار خوب فرمایش تمام شد <تصفح> چند چیز هست که میخواستم به تو بگویم مطالبی که باید حضوری به تو میگفتم اما الف تو احساساتی میشدی به نمیگذاشتی حرفم را بزنم گذشته از آن تو خودت همیشه حرف زیادی برای گفتن داشتی این اینجا برایت میگویم چکی که در پاکت اول از ماکل لولر گرفتی همه مبلغ نیست فقط حدیه کوچکیست برای کمک به تو تا هفته های اول بیکاریت را بگذرانی و به پاریس سفر کنی وقتی به انگلیس برگشتی این نامه را به دفتر مایکل در لندن ببرد او مدارک لازم را برای دستیابی به حسابی که از طرف من به نام تو باز کرده است در اختیارت میگذارد مبلغی که به حسابت گذاشتم آنقدر هست که به توانی آپارتمان خوبی برای خودت بخری و هزینه کالج را بپردازی. و در دورانی که به طور تمام وقت درس میخوانی زندگیت را اداره کنی. والدینم هم از همه چیز مطلع هستند. امیدوارم این نکته و کمکهایی که مایکل به تو میکند مشکلات را به حداقل برساند. کلارک. از همینجا که هستم میتوانم ببینم که به نفس نفس افتاده ای لطفا مستره با وحشت زده نشو تلاش هم نکن که رد کنی اینقدر نیست که باقی عمرت را راحت زندگی کنی اما با آن میتوانی آزادیت را بخری هم از آن شهر کوچک و خفقان آور که هر دو به آن زادگاه میگوییم و هم از آن شرایطی که به اجبار تن داده بود دستم از دادن پول به توی نیست که افسوس بخوری یا مدیون من شوی اصلا هم یادگاری نیست این پول را به تو می دهم چون حالا به جز تو هیچ چیز دیگری وجود ندارد که مرا خوشحال کنم خوب میدانم آشنایی با من برای تو رنج و عذاب همراه داشت و اندوم امیدوارم یک روز که دیگر از دستم خیلی عصبانی نیستی و کمی آرام شدی فهمی که چاره جز کاری که کردم نداشتم این مسئله به تو کمک میکند زندگی خوبی در پیش بگیری و زندگیت بهتر از وقتی شود که با من آشنا نشده بودی وقتی وارد دنیای جدیدت شوی اولش کمی احساس ناراحتی خواهی کرد آدمها وقتی از منطقه امن خودشان بیرون می آیند، همیشه احساس سردرگمی میکنند ولی امیدوارم تو هم اندکی احساس شادمانی کنی آن روز وقتی از موج سواری برگشتی قیافت همه چیز را لو میداد. کلارک تو تشنه ای جسارت را در تو دیدم اما تو سرکوبش کرده ای. پنهانش کرده ای کاری که اقلب آدم ها می کنن. به تو نمیگویم از ساختمان چند طبقه به پرپایین یا کنار نهنگ ها شنا کن یا اینجور جور گرچه ده دلم دوست دارم از این کار را بکنی <تصفيق> اما جسورانه زندگی کن در زندگیت شجاعت به خرج بده تلاش خودت را بکن یک جا ننشین آن اب شلواری راه را با افتخار بپوش و هر وقت خواستی بروی و با مردی زندگی کنی حتما بخشی از این پول را در جایی پنهان کن اینکه که فرصت هایی در اختیار داشته باشی مایه دلخوشی است. وقتی میدانم آنچه را دوست داشتم به تو دادن تسلی آبم <سؤال> <سؤال> کلارک تو در قلبم ثبت شدی از همان روز اولی که با آن لباس خندهدار و لطیفای های مسخرت وارد شدی و قادر نبودی کوچکترین چیزی را که احساس می بروز ندهی تو زندگی مرا دگرگون کرد. خیلی بیشتر از این پولی که زندگی زندگیت را تغییر خواهد داد. خیلی به من فکر نکن اصلا دوست ندارم ببینم که احساساتی شده این فقط خوب زندگی کن فقط زندگی کن بابش شت روی میز لقلقی مقابلم چگی با دستگونم را پاک کردم و نامه را رو روی میز گذاشتم. چند دقیقه طول کشید تا دوباره چشمانم ببینم. گارسون که رو رویم ظاهر شده بود پرسید پرسیقهوه بیاورم. پلکی زدم. جوان تر از تصورم بود. حالا رفتارش بزرگوارانه تر از قبل بود. شاید به گارسون های پاریس یاد دادند که با خانوم های گریان توی کافه به مهربانی رفتار کنند. گارسون گفت: شاید هم یک نوشیدنی دیگه. نگاهی به نامه‌ای روی میز انداخت و با همدلی لبخندی زد. من هم لبخند زدم و گفتم: نه ممنونم. باید بروم. صورت حساب را پرداختم و نامه را با احتیاط توی جیبم گذاشتم. میز را ترک کردم کیفم را روی شان انداختم به طرف پایین خیابان رفتم و راهی عطف فروشی شدم و پاریز و خاطراتش را پشت گذاشتم